میتونی همه چیز داشته باشی و هیچ چیز رو حس نکنی. عطسای نورا 1000 تو 8774 ریتوییت 30485 لایک. اکسیلیه نقری پر از کیک اصلی. فکر این که این زندگی هم در کنار بقیه زندگی‌هایش در جهان‌های موازی وجود داشت و صرفاً مثل نوتی از یک آکورد بود، عجیب به نظر می‌رسید. برای نورا تقریبا باور نکردنی بود که در زندگی برای پرداخت اجاره ماهانه خانش حسابی سختی بکشد. در همان حال در زندگی دیگری این چنین هیجانی میان تمام مردم دور تا دور دنیا ایجاد کند. چند طرفداری که رسیدن اتوبوس را به هتل فیلمبرداری کرده بودند، حالا منتظر امضا ایستاده بودند. به نظر نمیرسید توجه چندانی به بقیه اعضای گروه موسیقی نشان بدهند. اما شدیدن مشتاق صحبت کردن با نورا بودند. نورا در حالی که روی سنگریزه ها به سمت آنها می نگاهی اجمالی به یکی از طرفدارها انداخت. دختر چندین خالکوبی داشت و لباسی به تن کرده بود که ظاهر زنی امروزی اما گیروفتاده در دنیای سایبرپانک پسارستاخیزی را به او داد. موهایش را دقیقا مثل نورا درست کرده بود و حتی آن دسته سفید را هم داشت. نورا، نورا، سلام، آشقتی، ملکه، ممنون که اومدی برزیل کارت خیلی درسته و بعد همخانی نورا، نورا، نورا در حالی که نورا با خطی ناخانا برای طرفدارها امضا میزد مردی بیست و چند ساله تیشرتش را در آورد و او خواست که روی شانهش امضا کند گفت واسه خالکوبیه نورا پرسید واقعا و اسمش را روی بدن مرد نوشت مرد با سرخوشی گفت این بهترین لحظه ای عمرمه اسمم فرانسیسکوه لورا به این فکر کرد که چطور ممکن است لحظه نوشتن اسمش با ماژیک روی پوست او میتواند بهترین لحظه عمرش باشد جونمون نجات دادی آسمون زیبا جونمون جاد داد خیلی پر قدرته اوه وای آسمان زیبا؟ آهنگ آسمان زیبا رو شنیدی؟ مرد زد زیر خنده خیلی بامزدهی واسه همینه که عصفه منی خیلی دوستت دارم آسمان زیبا رو شنیده شوخی قشنگی بود نورا نمیدانست چه بگوید آن آهنگی که در نوزده سالگی در دانشگاه بریستول نوشته بود جان یک نفر رو در برزیل نجات داده است شنیدنش هم آدم را تحت تأثیر قرار میداد. آشکارا این همان زندگی مده نظر سرنوشت برای او بود. شک داشت دیگر هرگز به کتابخانه برگردد. می توانست با محبتی که همه به او نشان میدادند دادند کنار بیاید. بهتر از این بود که در بدفورد سوار اتوبوس خط هفت, هفت شود و زیر لب رو به پنجره آهنگ های زمزمه کند. برای دوربین های سلفی جست گرفت. دختری جوانی میان طرفتاران بود که انگار می خواست بزند زیر گریه عکسی بزرگ از نورا داشت که رایان بیلی را میبوسید. خیلی غمانگیز بود که باهاش خاطر رابطه کردی. میدونم، آره، غمانگیز بود اما خب، میدونی؟ زندگی همینه، آدم هر روز چیزای جدید یاد میگیره. جوانا کنارش آمد و مهربانانه او را به سمت هتل برد. نورا وقتی به لابی زیبای هتل رسید که بوی یاس میداد. همه جایش مرمری بود. چراغ داشت و جای جای آن گل گذاشته بودند. متوجه شد که بقیه اعضای گروه موسیقیشان از قبل در بار هتل نشسته بودند. اما برادرش کجا بود؟ شاید جای دیگر با خبرنگارها خوشو بش کرد. وقتی به سمت بار به راه افتاد با یک نگاه فهمید که همه از دربان گرفته تا منشیها و مهمانهای هتل نگاهش می کردند. نورا سرانجام موقعیت این را داشت تا بپرسد برادرش کجاست که ناگهان جوانا به مردی اشاره کرد جلو بیاید. مرد تیشرتی به تن داشت که با فونتی شبیه نوشته های فیلم های علمی تخیلی قدیمی رویش نوشته شده بود هزار تو. مرد احتمالا چهل و چند ساله بود چون ریشی خاکستری و موی کم پشت داشت اما به نظر می‌آمد در حضور نورا استرس دارد. وقتی با نورا دست داد، تعظیمی کوتاه به او کرد. گفت مارسلو هستم، ممنون که با مصاحبه موافقت کردین. نورا مردی دیگر را هم پشت سر مارسلو دید. جوانتر بود. پرسینگ و خالکوبی داشت و لبخندی پت و پهن زده بود که ابزار ضبط را در دست داشت. جوانا گفت یه فضای خلوت رو توی بار رزرو کرده بودیم اما حالا مردم اونجان فکر کنم بهتر توی اتاق نورا مصاحبه کنیم مارسلو گفت عالیه عالیه عالیه در حالی که به سمت آسانسور می‌رفتند نورا نگاهی به بار انداخت و بقیه اعضای گروه را دید به مارسلو گفت میدونین شاید دوست داشته باشین با بقیه اعضای گروه هم حرف بزنین نه؟ چیزایی رو که من یادم نباشه اونا یادشونه خیلی چیزا مارسلو لبخند زد، سرتکان داد و مهربانانه گفت فکر میکنم اینطوری بهتر باشه نورا گفت باشه همانطور که همه یه چشم ها به آنها خیره شده بودند منتظر آسانسور ماندند جوانا به سمت نورا خم شد حالت خوبه؟ البته آره واسه چی؟ نمی دونم، فقط امشب فرق کردی چه جور فرقی؟ فقط فرق کردی وقتی وارد سانسور شدن جوانا از زنی که نورا در اتوبوس او را دیده بود خواست برایشان از بار نوشیدنی بیاورد دو نوشیدنی برای گوینده های پادکست یک آب مدنی گازدار برای نورا و یک کایپرین ها برای خودش بیارشون توی اتاق مایا لورا به این نتیجه رسید که شاید در این زندگی با مشروب رابطه خوبی ندارد از آسانسور بیرون آمد و قدم روی فرش زخیم صورتی رنگی گذاشت که به اتاقش منتهی می شود. بعد در حالی که وارد اتاق می سعی کرد وانمود کند همه چیز برایش عادی است این اتاق بزرگ به اتاق بزرگ دیگری ختم می و آن یکی اتاق بزرگ هم به سرویس بهداشتی می رسید. گل بزرگی هم در اتاق برایش گذاشته بودند و امضای مدیر هتل روی یادداشت چسبیده به آن دیده میشد. نهایت تلاشش را کرد که نگوید وای. فقط خیره ماند به اسباب اساسی اشرافی، پرده های سر تا سری پنجره ها، تخت سفید و تمیزی به بزرگی زمینی زراعی، تلویزیونی به بزرگی سینمایی کوچک، شامپاین خنک قرار گرفته میان یخها و سینی نقره ای رنگی که صبرنی نوشته یک کارت کنارش پر از کیک اصلی برزیلی بود. جوانا یکی از شیرینی‌های کوچک را رو از روی سینی برداشت و گفت: فکر نکنم تو بتونی از اینها بخوری. دیگه رژیم جدید گرفتی. هارلی گفت: حواسم بهت باشه. در حالی که جوانا به کیک گاز می‌زد، نورا به او خیره ماند و در این فکر رفت که کدام رژیم به درد بخوری؟ با خوردن کیکی به خوشمزگی کیک اصلی برزیلی تضاد دارد. نمیدانست کیست، اما میدانست که از او خوشش نمی آید در ضمن فقط محض اطلاعت میگم آتیش سوزی لوسانجلس هنوز ادامه داره و الان دارن نیمی از جمعیت کالاباساس رو تخلیه میکنن اما اگه شانس بیاریم آتیش اونقدر بالا نمیاد که به خونه تو برسه دوران نمیدانست از فکر اینکه خانه ای در لوسانجلس دارد خوشحال شود یا راحت شود از اینکه ممکن است به زودی خانهاش در آتش بسوزد دو گوینده برزیلی پادکست چند لحظه ای را سرف برپا کردن وسایلشان کردند. نورا روی مبل بلند توی اتاق نشیمن نشست و به جوانا داد که همزمان با پاک کردن خردریزه های کیک که اصلی دور دهانش با انگشت مانیکور شده برای نورا توضیح می‌داد. این دو نفر گوینده های محبوب ترین پادکست برزیل به اسم اصوم هستند. جوانا برای مشتاق کردن او گفت بین مردم حسابی شناخته شده‌اند. تعداد هاشون خیلی زیاده. واقعا ارزش داره که انجامش بدی. مثل شاهین مادر بالای سر نورا ایستاد و تا شروع شدن پادکست پیش او ماند. پادکست افشاگر مارسلو با لحجه بسیار خوب به زبان انگلیسی گفت خوب سال شلوغ و پرهی جانی داشتی را گفت آره واقعا خیلی بالا و پایین داشت سعی می کرد مثل ستاره های راک حرف بزند حالا اگه اشکالی نداشته باشه بریم سراغ آلبوم پاترزویل متن همه ی آهنگاش خودت نوشتی درسته؟ نورا به خال کوچک و آشنای روی دست چپش خیره شد و هند زد. بیشترشون رو، آره، جوانا گفت، همهشون خودش نوشته. مارسلو سری به تعیید تکان داد. مرد دوم هنوز داشت لبخندی پت و پهن میزد و در لپتاپش با سطح صدای میکروفون ها ور می‌رفت. همزمان با رسیدن نوشیدنی های شان مارسلو گفت، به نظرم آهنگ محبوبم از این آلبوم آهنگ پرها باشه. خوشحالم که ازش خوشت اومده نورا سعی کرد راهی برای فرار از این وضعیت پیدا کند بگوید سردرد دارد یا دلدرد اما آهنگی که دوست دارم اول دربارش حرف بزنیم همون آهنگی که اول از همه بیرون دادین پا تو از زندگیم بکش بیرون به نظر میاد مفهومی خیلی شخصی پشتش بود نورا لبخندی اجباری زد همه ی حرف توی مطنع آهنگ زدند. مشخصا خیلی براشون سؤال شده بود که این آهنگ در واقع ای داشت به، نمیدونم به انگلیسی اسمش چیه جوانا برای کمک رساندن به او گفت، حکم من؟ آره حکم من که جا خورده بود گفت، خب ترجیح میدم همه چیزو توی آهنگ بگم، حرف زدن در این چیزا برام سخته آره درک میکنم اما خوب توی مساحبه اخیرت با رولینگستون کمی در برای دوست پسر سابقه دن حرف سدی و گفتی که گرفتن حکم من علیه اون چقدر سخت بوده منظورم بعد از اینه که مخفیانه دنبالت میکرد یه بارم وقتی خونه نبودی سعی کرد وارد خونت بشه درسته بعد هم به خبرنگارا گفت متن آهنگ آسمان زیبارو خودش نوشته لعنتی نورا روی مرز گریستن و خندیدن بود اما به هر حال موفق شد خودش را کنترل کند و هیچ کدام از این احساسات را نشان ندهد وقتی هنوز باهاش دوست بودم آسمان زیبا رو نوشتم در هم ازش خوشش نیومد اصلا از اینکه توی گروه موسیقی باشم کوشش نمیومد ازش متنفر بود از برادرم متنفر بود از راوی متنفر بود از الا متنفر بود الا یکی از اعضای اولیه گروه بود. اگه بخوام خلاصش کنم، دن خیلی حسود بود. همه چیز خیلی غیر واقعی به نظر می رسید. در یک زندگی، همان زندگی که مثلا زندگی مطلوب دن بود، آنقدر از ازدواج با نورا خسته شده بود که به او خیانت می کرد. در این زندگی همچون تحمل دیدن موفقیت نورا را نداشت، تلاش کرده بود مخفیانه وارد خانه او شود. نورا گفت، یادم آدم عوضیه. به زبون پرتقالی فوشی که نشون بده چه آدم بدیگه بلد نیستن. کابراؤ یعنی آدم عوضیه مرد جوانتر با چهرهای در هم رفته و مجسم مانند اضافه کرد. یا، یا، یا بی شعور. آره خب پس همین مناسب مناسبشه. در نهایت معلوم شد. اصلا اونی نبود که نشون میداد. عجیبه که وقتی زندگیت عوض میشه آدمای های اطرافت هم چقدر رفتار متفاوتی از خودشون نشون میدن. فکر کنم بهای شهرت همینه. آهنگی هم نوشتی به اسم هنری دیوید سرو کم پیش میاد اسم فیلسوف ها رو روی آهنگ بذارن. میدونم خب وقتی تو دانشگاه فلسفه میخوندم سرو فیلسوف محبوبم بود. خالکوبیم هم از حرفای اونه. به نظرم هم اسم سرو خیلی بیشتر به اسم آهنگ میاد تا اسم امانوئل کانت. کم کم داشت یاد میگرفت چطور رفتار کند نقش بازی کردن در زندگی که سرنوشتش بود تلاش زیادی لازم نداشت و آهنگ زوزه عجب آهنگ پرقدرتی توی 21 کشور پرشنونده ترین آهنگ و ویدوش با وجود بازیگرهای درجه یکی هالیوودی جایزه گرمی رو برنده شد فکر کنم دیگه دوست نداشته باشی دربارش حرف بزنی درسته آره تقریبا جوانا بلند شد تا یک کیک اصلی دیگر بخورد مارسلو لبخندی مهربالانه زد و بحث را درباره زوزه ادامه داد از نظر من حس خیلی خشنی داشت آهنگو میگم اصل این بود که داشتی همه چیز رو میریختی بیرون بعد هم فهمیدم متنش رو همون شبیه نوشته بودی که مدیر برنامه قبلیت رو اخراج کردی مدیر قبل از جوانا رو فهمیده بودی که داشته سرت کلاه می نورا بداهه جوابش را داد. آره وضع خوبی نبود. احساس میکردم بهم به هم خیانت شده. من قبل از زوزه هم طرفدار پروپا هزارتو هزار تو بودم. اما وقتی زوزه رو شنیدم دیگه مطمئن شدم. البته آهنگ دختر فانوس دریایی. ولی با شنیدن زوزه اینطوری بودم که نوراسید یه نابقه است. خود متن آهنگ نسبتاً گنگه اما تمام خشمت رو همزمان خیلی آروم و پراحساس و قدرتمند رها کردی. مثل اینه که گروه کیور توی اوایر دوران کاریش با فرانک اوشن و کارپنترز و تیمین پالا همکاری کرده باشه. نورا تلاشش را کرد. اما موفق نشد بفهمد منظور مارسلو چطور ترکیب آهنگی است. هم مارسلو با خواندن بخشی از آهنگ همه را قافل گیر کرد. موسیقی رو قطع کن تا آهنگ رو بهتر بشنوی. لبخندهای دروغین رو کنار بذار و رو به ماه زوزه بکش. نورا انگار که این کلمات را از قبل بداند، لبخند زد و سر تکان داد. آره، آره، فقط داشتم زوزه میکشیدم. چهرهی مارسلو جدی شد. به نظر میآمد واقعا نگران نورا بود. توی چند سال اخیر های زیادی کشیدی. تعقیب شدن مخفیانه یه مدیر برنامه بعد، های دروغین پرونده دادگاه، مشکلات کپیرایت، قطع رابطه پر سر و صداد با رایان بیلی، فراموش نکردن آلبوم آخرت، دوره باستوان بخشید، اتفاقی که توی تورنتو افتاد. اون بار که از خستگی توی پاریس بیهوش شدی، های زندگی شخصی و خیلی اتفاق‌های دیگه و این برخورد بد رسانه ها با هات به نظر چرا رسانه ها اینقدر ازت متنفرند؟ نورا کم کم داشت معذب میشد. شهرت همیشه همینطور است. انگار پیوسته داشت مورد حجوم ترکیبی تلخوشیرین از مهربانی و حمله قرار می گرفت. تعجبی نداشت که این همه آدم های معروف وقتی در شرایط بد قرار میگیرند به کارهای بد و اشتباه رو میآورند. مثل این بود که او را میبوسیدند، و همزمان به او سیلی می زدند. من نمیدونم. خیلی آزاردهنده است منظورم اینه که تا حالا شده به این فکر کنی که اگه مسیر دیگه ای رو توی زندگیت پیش می‌گرفتی چی می‌شد؟ نورا در حالی که بالا آمدن حباب گاز را در آب مدنیش تماشا می‌کرد، به سؤال او گوش داد برای نخستین بار متوجه حقیقتی شد و گفت فکر کنم تصور اینکه همیشه راه‌های تری هست، راحته، اما شاید هیچ راه آسونی وجود نداشته باشه و همه راها معمولی باشن. توی یه زندگی ممکن بود من ازدواج کرده باشم. توی یه زندگی دیگه ممکن بود فروشنده مغازه باشم، ممکن بود به پیشنهاد یه مرد بامزه برای خوردن قهوه جواب مثبت داده باشم. توی یه زندگی دیگه ممکن بود در حال تحقیق درباره یخچال‌های قطب شمال باشم. توی یه زندگی ممکن بود قهرمان شنای المپیک باشم کی میدونه هر ثانی یه روز داریم وارد جهان جدید میشیم همه وقتمون رو هم صرف آرزوی داشتن یه زندگی متفاوت یا مقایسه خودمون با بقیه و همینطور نمونه های دیگه خودمون توی زندگی های دیگه میکنیم در حالی که هر زندگی شامل حدی از خوبی و حدی از بدیه. مارسلو، جوانا و آن یکی مرد برزیلی با چشمهای گشاده به او خیره شده بودند. اما حالا دیگر نورا روی دور افتاده بود. زندگی الگوهای متفاوتی داره. ریتم داره. وقتی توی یه زندگی گیر افتاده باشیم، خیلی راحت ممکنه توی خیالاتمون تصور کنیم که زمانهای غمانگیز یا ناراحت کننده یا شکست یا ترسمون نتیجه بودن توی اون زندگی خاصه. که فکر کنیم همه اتفاقها نتیجه اون شیوه خاص زندگی کردنه نه نتیجه صرفا زندگی کردن منظورم اینه که اگه میفهمیدیم هیچ شیوه زندگی نیست که بتونه ما رو در برابر غم ایمن کنه همه چیز خیلی ساده‌تر میشد فقط باید بفهمیم که غم هم در عمل بخشی از ذات شادیه نمیشه شادی رو داشت و غم رو نداشت البته هر دوی اینها برای خودشون حد و اندازه‌ای دارن اما هیچ زندگی وجود نداره که توش بتونیم تا ابد غرق شادی محض باشیم. تصور اینکه چنین زندگی وجود داره فقط باعث میشه توی زندگی فعلیمون بیشتر احساس غم کنیم. مارسلو پس از آنکه مطمئن شد حرفای نورا تمام شده گفت: جواب فوق‌العاده‌ای بود، اما میتونم بگم که امشب توی کنسرت شاد بودی. وقتی به جای زوزه آهنگ پولی بر آبهای متلاتم رو خوندی، مثل این بود که حرف مهمی رو با صدای بلند اعلام کردی. انگار گفتی من قویم. حس کردم میخوای به ما طرفتارات بگی که حالت خوبه و خوب. حالا که بحثش شد، تور چطوره؟ خوب، عالیه، آره، دقیقاً میخواستم این پیام رو به همه بدم که خب دارم نهایت تلاشم رو برای داشتن یه زندگی خوب میکنم اما بعد از مدتی دلم برای خونه تنگ میشه مارسلو با لبخندی شیطن تامیز گفت، کدوم خونه؟ e منظورم اینه که توی لندن بیشتر احساس میکنی خونه یا آنجلس یا ساحل آمالفی به نظر میاد در این زندگی نورا همه جای دنیا را گشته نمیدونم، فکر کنم لندن مارسلو نفسی امیغ کشید گویی سوال بعدیش سخر آبی بود که میخواست در آن شیرجه بزند ریشش را خاراند خیلی خوب، اما حتما زندگی اونجا برات سخته چون میدونم با برادرت توی اون آپارتمان زندگی میکردی چرا باید سخت باشه؟ جوانا از بالای نوشیدنیش نگاهی کنجکاف به او انداخت مارسلو با مهربانی و احساسات به او نگاه کرد. به نظر می آمد چشمانش خیز شدهاند آهسته جع ای از نوشیدنیاش نوشید و گفت چیزی که میخواستم بگم اینه که برادرت بخش بزرگی از زندگیت و گروه موسیقیتون بود بود؟ در همین یک کلمه کوتاه چقدر قم و اندوه نهفته بود مثل سنگی که در آب یفتد و پایین برود یاد زمانی افتاد که قبل از رفتن دوبارهشان روی صحنه از راوی درباره برادرش پرسیده بود. دادش آمد که وقتی اسم برادرش را آورد، تماشاچیان چه واکنشی نشان دادند؟ هنوزم همین اطرافه، امشب اومده بود. جوانا گفت، منظورش اینه که حسش میکنه. همشون حضور اون رو حس میکنن. روح قدرتمندی داشت. پراشوب اما قدرتمند. غمنگیز بود که الکل و مواد مخدر و سختی های زندگی چطور از پادرش آوردن؟ نورا پرسید؟ معور چیه دیگر نقش بازی نمیکرد واقعاً باید میفهمید مارسلو نگاه غمنگیزی به او انداخت میدونی خب فقط دو سال از مرگش گذشته از اووردوس کردنش اورا نفسی عمیق کشید فقط برای این بلا فاصله به کتابخانه برنگشت که هنوز حرفشان را درک نکرده بود بلند شد و گیج و سردرگم و سکندری خوران از اتاق بیرون رفت. جوانا ابتدا با خنده گفت نورا بعد با نگرانی تکرار کرد نورا نورا وارد آسانسور شد و پایین رفت گفتی جو احتمالاً داره با خبرنگارا خوش بش میکنه چی؟ خودت گفتی پرسیدم جو کجاست و گفتی با خبرنگارا خوش بش میکنه راوی نوشیدنیش را پایین آورد و انگار که چیستان شنیده باشد به او خیره شد درست میگفتم داشت با خبرنگارا خوشو می کرد چی؟ راوی به جوانا اشاره کرد که با چهرهای وحشت زده از آسانسور به لابی پا گذاشت آره دیگه جو پیش خبرنگارا بود انگار مشتی از جنس غم به شکم نورا کوبیده شد گفت راوی گفت وای نه جو جو وای بار بزرگ از جلویش ناپدید شد میز نوشیدنی ها جوانا، مارسلو، آن یکی مرد که مسئول صدا بود، مهمانان هتل، راوی، مقیه، کف مرمری لابی، پیشخاندار، گارسونها، ها و گلها همه با هم به نیستی کردند.